دعای هشتم صحیفه مبارکی سجادیه رو با هم میخوندیم این دعا به سپاتی اشاره کرده حضرت سجاد سامون علی که از مهمترین مشکلات اخلاقی مشکلات زندگی و مشکلات دروش رو حضرت انوان میکنن و کمتر به راهکارهای عملی برای برونرفت و فرار از این مشکلات حضرت اشاره میکنه به ظاهر تنها مسیری که حضرت برای فرار از این سختی ها و مشکلات مطرح میکنه پناه بردن به قدرت خدای متعال. <تصفيق> این نشون دهنده این هست که این سپات سپات بسیار سخت و از سپاتی هستش که زندگی رو نه تنها مختل میکنه بلکه مضر هست و گاهی ثابت میکنه انسان رو از زندگی سالم از زندگی همراه با راحتی همراه با سلم و سلامت ولیزا باید دقت کرد که حضرت چرا بسنده میکنه به پناه بردن به خدای متعال فقط چرا مثل خیلی از مشکلاتی دیگه راه برون از مشکل رو حضرت و حضرات مساهم میکنن چرا اینجا فقط عرض میکنه که خدایا به قدرت تو پناه میبرم ظاهرا بعض از صفات هست که در جایی از مثلا زندگی با اختیار نمیشه راهی پیدا کرد از اون صفت بد و چاره ای نیست بجز اینکه خدای متعال عنایتی بکنه حتی بسترهاش هاش رو هم و زمینه هاش رو هم انسان بعضی مشکلات هست که نمیتونه فراهم کنه خصوصا اگر عادت کرده باشه و رویه زندگی شده باشه این مشکلات و داشتن این صفتها در زندگیش عادت شده باشه مونده میشه درماندگی پیدا میکنه و اینجاست که اون درماندگی و استرار انسان رو طبیعتاً وا می داره به ممحل شدن در خواستن کمک از خدا فقط اونجاست که داره در آیه شریفه وقتی انسان به استرار می خدای متعال راه فرار رو از اون مشکل و فرج رو برای رهایی از اون مشکل برای شخص مصری می‌رسونه